جارما و پول جان بخشایشگر بیکران است بنابراین هیچ امری طبیعی از فراوانی نیست آنچه غیر طبیعی است قهطی، فقدان و فقر است می که اینها کلمات سنگینی هستند باورهای مختلفی حال ثروتمندان و فقرها داراها و ندارها می چرخند. نیروهای اجتماعی اغلب علیه فقرها کار می کنند و من به هیچ وحش ملامت یا قضاوت ارزشی نمی کنم. در زیر همه نابرابری ها و بیعدالتی ها جان آسیبی نمی بیند یا حتی تحت تحصیر قرار نمی گیرد. اگر یک عکس فوری از زندگی هر کسی در هر کجای دنیا بگیرید، مسیری از دارما وجود دارد که جان از آن حمایت خواهد کرد. مسیر درونی همیشه وجود دارد و با وجود این تعداد کمی از مردم شرقی یا غربی، ثروتمند یا فقیر درک می کنند که چگونه می توانند به حق طبیعی معنوی خود دسترسی پیدا کنند. یوگا مخزن دانشی درونی است که برای یک زندگی آکنده از فراوانی و شادکامی لازم است، کلید ثروت این است که در دارمای خود باشید و در مسیری بمانید که برای شما بهترین است. بهترین برای شما از قبل تعریف نشده است. شما یک گزینه دارید و در واقع در تمام زندگی خود انتخاب‌هایی کرده اید که به این لحظه از زمان منجر شده است. به اطراف نگاه کنید. وضعیتی که در آن قرار گرفته اید همه گی زاییده ذهن هستند. سواهر فیزیکی خانه، شغل، دارایی، حقوق، حساب بانکی و غیره سمره آگاهی است به خودی خود مسائل مادی ارزش ذاتی ندارند یک امارت میتواند مکانی پر از ناراحتی باشد یک کلبه میتواند پر از شادی باشد یک شاغل میتواند منبعی برای رضایت شخصی یا کاری یک نواخت و طاقت فرسا باشد حقوق شما میتواند آنچرا که از زندگی میخواهید برای شما به ارمغان بیاورد یا به سختی برای گذران زندگی کافی باشد. اگر چیز بیشتری از زندگی میخواهید، چشمندازی تدوین کنید که دارما از آن پشتیبانی بانی کند. همکنون از شما میخواهم که دیدگاه شخصی خود را درباره موفقیت، ثروت و کامیابی بنویسید. اما قبل از آن باید بدانید که دارما از چه ارزشهایی حمایت می کند و از چه ارزشهایی را حمایت نمی کند دارما از شما حمایت خواهد کرد اگر هدف شما شادی و کامیابی است خود را وقف دیگران می کنید به موفقیت دیگران به اندازه موفقیت خود اهمیت می دهید. کردارتان از روی عشق است. ایدعالهایی دارید و با آنها زندگی می کنید. سالجو هستید. به خود و اطرافیانتان انگیزه می دهید. گوش می دهید و یاد می گیرید. به گذینه های خود می افزایید. مسئولیت پذیر هستید. در خصوص تجربیات جدید کنجکاوی می کنید آزادنددیش هستید خود را میپذیرید و ارزش خود را میدانید از آنجا که بودن در دارما طبیعی ترین راه برای زندگی است این چیزها هم به همان اندازه طبیعی و به راحتی شایسته پیرووی هستند. اما زندگی مدرن ما را بر اساس آنچه که مطابق دارماس راهنمایی نمایی نمی کند و اغلب کاملا برعکس است. ما تحت تاثیر شیوه ای از زندگی هستیم که سمره آن دلهوره، پرش افکار، ناراحتی و تحریک مداوم است. این نتایج زمانی به دست می که شما در لایه سطحی آگاهی خود زندگی می کنید. در ظاهر یک بازی دائمی از نیازها و خواسته هایی وجود دارد که ریشه ی ندارند. ارزش معنوی آنها صفر است به این معنی که هیچ اتصالی با دارما وجود ندارد. یوگا واقعیت نحوه عمل کرده آگاهی را بیان می کند. پس از آن هر یک از ما می توانیم هر طور که می خواهیم زندگی کنیم. شما میتوانید بدون دانستن هیچ مطلبی در باره نحوه کار یک ماشین آن را خریداری کنید. به هر حال این فقط یک ماشین مفید و تعویز پذیر است. اما شناخت اندک در خصوص نحوه عمل کرده دارما مشکلات زیادی به همراه دارد. ناخداگاه همه ما علیه جلب حمایت دارما به این روش ها عمل میکنیم. درما نمی تواند به شما کمک کند اگر فقط می نفر اول باشید. دیگران را پله ترقی خود قرار می دهید. هر کار غیر صادقانه ای را انجام می دهید. دیگران را مقصر مشکلات خود می دانید. برای صربتمند شدن معیوس هستید. موفقیت مادی را مقدم بر شادی قرار می دهید. نیازهای اطرافیانتان را نادیده می گیرید. خود را همیشه بر حق میدانیید. به دنبال تسلط و کنترل بر دیگران هستید. سطح دلخوری خود را نادیده میگیرید. عشق و احساس در شما جایی ندارد. فاقد همدلی و مراقبت هستید. بیشتر از آنچه میبخشید، میستانیید. شما سرسختان کوته فکر هستید. اجتناب از این کارها به طور کلی برای بیشتر مردم سخت نیست. اعمال به ظاهر ناچیز خودخواهانه بی اعتنائی گاه به گاه به دیگران تمایل به ملالت و عادت به ستاندن بیش از آنچه میبخشیده است که میتواند به طور نامرعی وارد زندگی روزمره شما شود. جارما از شما نمیخواهد که قدیس باشید. از شما میخواهد که آگاه باشید. وقتی از همه مطالبی آگاه باشید که جان می تواند به شما بدهد بودن در دارمای خیش منبعی از شادی و سرور فراهم می کند با ارزشترین نوع آگاهی خداگاهی است زیرا دارمای شما نبا خاستهای سطحی بلکه توسط خیش حقیقی شما هدایت می شود خیشی که از نظر جان به منبع شما متصل است در طول سالها از مردم دعوت کرده ام با پاسخ دادن به مجموعه ای از پرسش هایی که به اصل هدف آنها از حضور در اینک و اینجا اشاره می کند، خداگاهی خود را بالا ببرند. قبل از آن، از شما دعوت می کنم تا به قول خودم، پروفایل جان خود را تدوین کنید. پس از آن، در خصوص آنچه ها ویدام می کند، صحبت خواهیم کرد. تفسیر پروفایل چان چگونه به خیش حقیقی گوش بسپاری؟ رسیدن به ثروت در حالی که در دارمای خود هستید شما را در مسیری حفظ می کند که برایتان مناسب است. این مسیر خودتان است که باید آن را تعریف کنید و به آن فرم دهید. چگونه؟ با ارتباط با آگاهی جرفتر خود، جایی که الهام و خرد از آنجا می آید. ما می این مکان ژرف را جان یا خیش حقیقی شما بنامیم. پیام هایی که از این سطح می آیند، تجارب شادی و کامیابی را با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت ذهنی پرورش می که سطح ذهن را اشغال می کند. برای اینکه هر روز در خود باقی بمانید باید به جان خود متصل شوید. زیبایی جان یا خیش حقیقی در این است که جدول زمانی ندارد و در حالی که شما درگیر خواسته ها و نیازهای زندگی هستید، الهاامها به نحوی از سطح ژرفتری میآیند. هر پیامی به آرامی به شما یادآوری می کندند که چه چیزی در زندگی ارزشمن تر است؟ تمام آنچه در زندگی انسان با ارزش ترین است عشق، شفقت، خلاقیت، خرد، رشد درونی، بصیرت، زیبایی و حقیقت همین حالا هم بخشی از وجود شماست. این امر بدون استثنا درست است. نور آگاهی ناب لاغزار است و خوشبختانه در سطوحی مختلف همه ما در نور زندگی می کنیم. کاری که باید انجام دهید این است که آنچه را که فکر می کنید هستید با خیش حقیقی خود مطابقت دهید. نیازی به تکاپو برای ارتقای فردی نیست. جان شما را بی اندازه ارزشمند می کند. در حال حاضر راه اصلی ثبت پیام جان در سطح ایگا انگام این که تکانهی از عشق، زیبایی، همدلی، بینش و همه ارزشهای دیگری را که جان به شما میدهد احساس می پیامی است که از دیوار دفاعی ایگا به بیرون درس کرده است. ایگا چیزی نیست جز بدری از خیش حقیقی که تظاهر به واقعیت دارد. پرسشنامه با همه اینا به عنوان مقدمه این پرسشنامه به شما کمک میکنه تا ارتباطی با خود راستینتون تقریبا در هر موضوع برقرار کنید. این همون چیزیه که خواهانش هستید. دستور العملها مکانی آروم پیدا کنین، با چند نفس عمیق برای لحظهی خودتون رو متمرکز کنین و با احساس آرامش و ساکن شدن در خیش حقیقیتون به این سآلات پاسخ بدین. توصیه برای این که در توضیحات طولانی نشین، پاسخهای خودتون رو تا جایی که میتونین کتاه تر کنین توصیه کالی من پاسخهای سه کلمه ایه، فقط مطمئن بشین که اونا سه کلمه منیدار هستن یک آیا میتونید یکی از تجربه های عوج زندگیتون رو توصیف کنید؟ چیزی که یه آهان آره محکم، نقطه عطف، یا مثال شایان توجهی از تمرکز کامل باشه؟ پاسخ خودتون رو یادداشت کنید. دو. در سه یا چهار کلمه بگین هدف شما از زندگی چیه؟ 3. افتخار دستاورد شما برای خانواده چیه ؟ چهار. سه نمونه از مهمترین ارزش رو بیان کنید که به یه رابطه وارد می کنید. پنج سه ارزش مهمی که میخواید از یک رابطه دریافت کنین چی هستن؟ 6. سه نفر از مهمترین قهرمانان زندگی شما چه کسانی هستن؟ 7. مواهب، مهارتها یا استعدادهای منحصر به فرد شما چی هستن؟ 8. چطور به دنیا و مردم اطرافتون کمک کردین؟ نو اگه تمام پول و زمان دنیا رو در اختیار داشتین، چی کار میکردین؟ ده مهمترین کاری که میخواستین انجام بدین اما هرگز انجام ندادین چیه؟ تعمال در پاسخ ها هدف و ارزش واقعی سوالات این است که شما را با خیش حقیقیتان آشنا کند اگر در حال حاضر زندگی دارید که با رضایت همراه است خیش حقیقیتان را به خوبی میشناسید حتی بیشتر از آنچه که تصور می کنید برای رسیدن به بالاترین ها و زندگی بر اساس انگاره هایتان فضا وجود خواهد داشت اما پاسخ های شما باستا به مجال های از دست رفته و رؤیاه های رنگ باخته نخواهد بود بسیاری از ما متوجه خواهیم شد که خیش حقیقی خود را جست گریخته می شناسیم. رفتار ناخداگاه در بیشتر مواقع شکاف ها را پر می کند و به ما امکان می دهد با تصویری که از خود به دنیا می فرستیم همزاد پنداری کنیم شادی و رضایت بیشتر انگیزه فانیست تا واقعیت روزمره. اما در ساحت خیش حقیقی، ما به دارمای خود متصل هستیم که از زندگی مقدر شده ما حمایت می کند. به رغم فراز و نشیبهایی که اکنون تجربه می دارمای ما آنجاست و منتظر است تا با ما ارتباط برقرار کند. بسیار ارزشمند است که پاسخهای خود را ذخیره و به طور منظم پروفایل جان خود را بررسی کنید. هیچ کس جز خودتان نمیتواند شما را بررسی درونی کند. پاسخ دادن به این سوالات به شیوه جدی و با تفکر شما را با واقعیت جرفتری آشنا می کند و این خداگاهی شما را گسترش می دهد. خیش حقیقی می که میخواهید ارتباطی پایدار با آن داشته باشید و اگر روی پروفایل جان خود تمرکز کنید، این ارتباط همواره جرفتر می شود و به تعبیر مولانای جان باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستان شو مستان شو